بخش سوم وقتی جامعه بیشعور می شود. فصل چهاردهم تجارت به مسابه بیشعور به جای تولید ناخالص ملی نسل جدیدی از بیشعورهای خالص ملی تولید می کنیم. از کتاب خلوص ملی برای درک درست بیماری بیشعوری بسیار مهمه که بدونیم این بیماری فقط افراد رو آلوده نمیکنه بلکه گروه عظیمی از مردم از اهل تجارت گرفته تا اعضای اتحادیه از گروه سیاسی تا محصلان مدارس و دانشگاه ها ممکنه به این بیماری آلوده بشن و به طور جمعی مثل بیشعور رفتار کنند بعضی وقتها هم کل جامعه مثل بیشعورها رفتار میکنه کنه وگرنه چگونه ممکنه کشوری علیه کشور دیگری جنگ راه بیاندازه. وقتی که بیشعوری در مقیاس وسیع ظهور پیدا میکنه در اصطلاح پزشکی به آن بیشعوری جمعی می گن که به عادت جمعی تعداد کسیری از مردم به رفتار بیشعورانه اشاره داره. تا حالا هر بار که جامعه بیشعور شده، سر و موضوع با انحراف اجتماعی نامیدن آن به هم اومده. اما میدونیم دونیم که مسئله اصلی اپیدمی شدن بیماری بیشعوریه. در دهه 1950، شنیدن حرفای مکارتی بیشعوری رو در آمریکا واگیردار کرد. در دههی 1960، با جنبش های اعتراض آمیز دانشجویان، بسیاری دیگر آلوده شدن، در دهه 1970، جامعه به طور عمومی از مرزی که بعدن جیمی کارتر اون رو کسالت روانی نامید رنج می برد. اما از اونجایی که هیچ کس دوست نداره به بیشوریش اشاره بشه، کارتر پا شد و به خاک سیاه نشست. دهه 1980، دهه صدور ادالت به عنف بود که سیاستمداران، لابیستها لابیست ها و بیشعور دیگری از این دست، اون رو دستاویزی برای تهاجمات خودشون کردن چشمانداز آینده هم واضحه بیشعور بیشتر تهاجم بیشتر یکی از حوزه مهم اجتماعی که ویژگی های بیشعوری رو میتوان در اونجا دید حوزه تجارت مهمترین عامل آلودگی تجارت به بیشعوری رابطه تنگاتنگ اون با سناگه نظامیه بده بستونا یه خوبی بین این دو برقراره، به طوری که به نظر میرسه، همزمان دستشون توی جیبای هم باشه. فقط یک چیز مانع از اون میشه که تجارت به طور کامل بیشعور بشه، یعنی برخلاف دولت، و اون بازار آزاده که تجارت رو مجبور میکنه مولد باشه. البته ذات تولید با بیشعوری ناسازگاره. اما تجارت معلفه را در خود داره که حتی در صورت مولد و رقابتی بودن هم به واسطه یا اونا با بیشعوری هم از منظر فردی و هم از منظر اجتماعی اشتراک داره. مثل یک، هرس و آز، دو، رقابت، سه، جاه و چهار، وظیف نشناسی اجتماعی. شهوت قدرت رو در نظر بگیرید. همین خصیصه باعث میشه که رؤسای شرکت‌های بزرگ با خرید بی حساب شرکت‌های کوچکتر شرکت‌های خودشون رو چنان زیر بار قرض ببرن که سرانجام شرکت‌های بزرگتر اونها رو بخرن. کارهایی که هیچ کدام تأثیری بر بهبود وضع اقتصادی آمریکا ندارن به دنبال برتری بودن چیز خوبیه اما در تجارت گاهی هدف اصلی یعنی کسب سود مشروع و قانونی فراموش میشه هنگامی که رو کم کنی، حرکات تبلیغاتی، کسب امتیاز بیشتر، طراحی بازپرداخت هاگ و قمار بر روی سوده زودبازده زود بازده از هدف اصلی تجارت مهم تر باشن، اون وقت که تجارت بیشعور شده. وقتی مدیران شرکت هایی که هر سال ضرردهی دارند، پاداش‌های های نیم میلیون دلاری بگیرن، تجارت بیشعور شده. وقتی شرکت هایی که به خاطر توقف تولید محصولات یا ارائه خدماتشون بلا موضوع شدن و همچنان به فعالیتشون ادامه می تجارت بیشعور شده. وقتی صاحبان صنایع سعی کنن ما را متقاعد کنن که مصرف این همه سوخت فسیلی هیچ آسیبی به محیط زیست نمیرسونه و آبزیان هم از پسماندهای کارخانه های اونا خوششون میاد، اون وقته که تجارت بیشعور و در حقیقت بیشعور تمام عیار شده. البته بیشعوری در دنیای تجارت چیز تازه ای نیست. اما تجارت مدرن این هنر رو به دو شیوه تثبیت کرده. یکی روابط پرسونلی و دیگری روابط عمومی. روابط پرسونلی رو حتما مدیری اختراع کرده که میخواسته با کارکنانش به طور سیستماتیک به عنوان بیشعور رفتار کنه. کار کارکنان بخش روابط پرسونلی اینه که با ارزانترین روش ممکن کارکنان رو متقاعد کنن که شرکت هوای اونا رو داره و مواظبشونه آدمایی که در این بخش کار میکنن با دقت در تمام هنرهای معمول بیشعوری، نظیر زبان بازی، چینی، حقوق بازی، و ارعاب ورزیده شدند روابط عمومی برای سازماندهی رفتار بی تجارت در داد و ستد با مردم به وجود اومده. تاکید روزفزون بر روی روابط عمومی نسبی گرایی اخلاقی رو چنان پربال داده که حتی به رسوایی واترگیت هم به چشم یک کمدی ابلهانه نگاه میشه. هرمیون هانیکات در زندگی نامش با عنوان دروغ‌ها، ها و روابط عمومی نشون میده که تا پیش از اون که یاد بگیره چطور طبق میل و خوشایند دیگران صادقانه دروغ بگه به هیچ کدوم از موفقیتاش نرسیده بود او مینویسد بعد از آن دیگر همه چیز راحت شد من مردم رو متقاعد می‌کردم که سیگار کشیدن برای سلامتیشان مفید است با آنها میگفتم که زیاد روی در مصرف مشروبات الکلی نه تنها عمر آدم را کوتاه نمی کند بلکه باعث بلند شدن آن هم می شود. حتی توانستم بعضی ها را متقاعد کنم که نگهداری مقداری آشغال سمی در حیات خلوتشان باعث خواهد شد تا از شر موش ها و علفهای های حرز خلاص شوند. او طبق وظیفه شغلیش تا آخرین لحظه تأثیر سوء سیگار بر سلامتی رو انکار میکرد و تا دم مرگش میگفت فقط هوای پاک لوس انجلس. شاید توصیف پیتر توماس از بیشعوری در تجارت بهترین توصیف باشه او در کتاب خود به نام رازهای موفقیت فوری و فوتی اشتراکات بیشعوری جمعی در دنیای تجارت رو چنین توصیف میکنه یک پیش از اینکه زیرابت رو بزنن، زیرابشون رو بزن. دو، همیشه رد گم کن. سه، هیچ وقت توضیح نده. یادداشت هم نکن تا مبادا دیگران بعدها اون رو کشف کنن. موازه باش صدات رو هم ضبط نکنن. چهار، همه چیز رو تکذیب کن. به جز تعریف و تمجید از خودت رو. پنج، کشی از استعداد و سخت کوشی هر کسی رو که برات کار میکنه. شش. همیشه حواست به دشمن باشه، خصوصاً بازرسهای دولتی، طرفداران محیط زیست و مأموران وصول مطالبات بانک ها. هفت. هرگز بیش از حد خشونت به خرج نده. چه بسا بیشعوری که امروز اخراجش می کنی، فردار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بشه و کار دستت بده. اگه این راهنمایی شما را در تجارت فوراً به موفقیت نرسوند ناراحت نباشید تجارت نشد سیاست که است